اذا جا نصر الله ما اینه وقت ربط رو دارم عرض میکنم وقتی که شما اعلام مقاتعه با کفار بکنید خدا تعالی بر شما نصرت میاره برای شما پیروزی میاره این سوره سوره نصر هست آخری سوره ای هست که به صورت کامل بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد 114می سوره قرآن مجید هست لذا در آخر الله تعالی دستور دادن، بیان فرمودن، مجده دادن که از این به بعد دیگه به پیش رفتن است فتح است، زفر است، موفقیت است لذا تا روزهایی که رسول الله بودن همیش فتح بود مکه فتح شد، حنین فتح شد، طائف فتح شد قبایل حوازن و سقیف همیش شکست خوردن همه گرویده اسلام شدن و بخشای از یمن هم فتح شد بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفات کردند این مجده فقط زمان رسول الله نیست معلوم میشه بعد از رسول الله کسانی که این پرچم را به دست گرفتن مسیر اونها هم مورد تایید الهی است چون الله عزوجل به بعد از فد صحبت میکنه از گرویدن انسان ها به صورت فوج فوج گروه گروه دست دست خبر میده خب بعد از رسول الله ادامه داشت تا اینکه نیمی از از جهان و از دنیا همه چی شد؟ فتح شد. لذا الله می فرماید اذا جاء نصر الله والفتح بعد از اینکه اعلام مقاطعه بکنید فتح خدا می اذا جاء زمانی که بیایت نصر الله یاری خدا والفت و همچنین فتح از سوی خدا بیایت و رأیت الناس یدخلون فی الله افواجا می بینی مردم را که داخل می شون در دین خدا افواجم بصورت گروه گروه بصورت جماعت جماعت وقتی که چنین پدیده آمد چنین حالت پیش آمد فسبح به حمد ربک و استغفر پس تسبیح و با حمد رب گو ببین تسبیح و حمد هر دو توحید را کامل می کند یکی که تسبیح به معنی تنزیح است این صفت سلبی است وقتی شما میگه الله یعنی خدایا از هر صفت ناروا شما پاکی از داشتن شریک پاکی از داشتن نائب پاکی از داشتن همسر و همتا پاکی از فرزند پسر و دختر پاکی این چی هست؟ این تسبیح هست نه تنها ما خدا را از صفات نادرست پاک بدانیم بلکه صفات زیبایش را هم برایش ثابت کنیم که خدای تعریفات خوب حمد خوب برای تو می زیبت تو عالم الغیب هستی تو خالقی تو مالکی تو نافع و دار هستی تو مشکل کشا و حاجت روا هستی لذا صفات بد خدا را نافع بکنیم میشه تسبیح و صفات زیبا برای خدای از و چی بکنیم اثبات بکنیم لذا این خاطر سبحان الله و بحمده کامل است. یا سبحان الله و الحمد لله کامل است هم تسبیح و هم تحمید لذا الله می فرمائد فسبح بحمد ربکا تسبیح بگو توأم بار حمد رب حمرا با حمد ربت و استغفره از خدا مغفرت بطلب. ببینید جا الله تعالی اصول فوز را یم می اولین تسبیح است دومین دو تحمید است سومین استغفار است انه کان تواب این علت است همانا الله عزوجل توبه پذیر است به بندگانش رجوع میکند